فصل اول آیا عشق ورزیدن هنر است؟ آیا عشق ورزیدن هنر محسوب می‌شود؟ اگر قبول کنیم که چنین است، در نتیجه حصول به آن احتیاج به دانش و کوشش دارد. و یا اینکه عشق احساس مطبوعی است که تجربه آن فقط به اقبال آدمی بستگی دارد و تنها آن کس که خوش اقبال است عاشق می‌شود. اساس این کتاب کوچک بر قضیه نخست استوار است. حالان که بی تردید امروز بیشتر مردم به قضیه دوم اعتقاد دارند. منظور این نیست که مردم فکر می کنند عشق چیز بی بر برعکس آنها تشنه عشقند و فیلم های عشقی شادی آفرین و قمفسای بیشماری را مشتاقانه تماشا می کنند. و به صدها تصنیف عاشقانه مبتزل گوش می سپارند. ولی به زحمت کسی به این فکر می افتد که عشق نیز مانند هنرهای دیگر احتیاج به آموزش و شناخت دارد آن کس که هیچ نمیداند به هیچ چیز عشق نمیورزد آن کس که قادر به انجام هیچ کاری نیست هیچ نمیفهمد آن کس که هیچ نمیفهمد بی است اما آنکس که میفهمد، عشق هم می ورزد. تیزبین است، می‌بیند. آگاهی بیشتر نسبت به ذات هر چیز، مولود عشق بزرگتری است. آنکس که خیال می همه میوه‌ها میوه ها با رسیدن توت فرنگی می رسند، هنوز از انگور چیزی نمی‌داند. پاراسلوس اساس این نگرش منحصر به فرد، مبتنی بر اصولیست است که هر یک به طور مستقل و یا توأم آن را تایید کنند در وهله اول مشکل اکثر مردم این است که پیش از آنکه خود استعداد عشق ورزیدن داشته باشند و دیگران را دوست بدارند، از دیگران توقع دارند که دوستشان داشته باشند. در نتیجه مشکل اینگونه افراد این است که چطور دوستشان بدارند و چگونه دوست داشتنی باشند. و در پیگرد این هدف راه های گوناگونی را دنبال می کنند. راهی که به بویژه مورد استفاده مردهاست این است که شخص در حد موقعیت اجتماعی خود موفق قدرتمند و ثروتمند باشد. راه دیگر که مخصوص زن هاست تلاش برای جلوه برازندگی و دلربایی است به وسیله پرورش اندام شیک پوشی و غیره راه‌های دیگری که زنان و مردان هر دو یکسان از آنها استفاده می‌کنند کسب سلوک و رفتار پسندیده خوشرویی تواضع شیرین زبانی یاری و بیآزاری است بسیاری از طرقی که برای دوست داشتنی بودن مورد استفاده قرار می‌گیرد همان طرقی هستند که برای موفقیت جلب دوستان و نفوذ در مردم به کار گرفته می‌شوند در حقیقت را که اکثر مردم فرهنگ فعلی ما از محبوب بودن درک می کنند اساسا ترکیبیست ما بین مردم پسندی و جذابیت جنسی. اعتقاد به قضیه دوم مولود طرز تفکر غلطی است که میگوید در عشق چیزی برای آموختن وجود ندارد و چونین استدلال می نماید که مشکل عشق مشکل معشوق است، نه مشکل استعداد. مردم فکر می‌کنند دوست داشتن آسان است و تنها کافی است معشوق مناسبی بیابند یا محبوب کسی بشوند که کار ساده ای نیست دلایل این استدلال ریشه در پیشرفت اجتماع نوین دارد یکی از این دلایل تحول بزرگی است که قرن 20 در مورد انتخاب معشوق به وجود آورده است در عهد ویکتوریا مانند بسیاری از فرهنگ‌های باستانی عشق اساساً یک تجربه شخصی و خود به خود نبود که سرانجام به زناشویی بیانجامد. انجامد برعکس ازدواج طبق رسوم مرسوم زمان و توسط خانواده طرفین و یا به وسیله واسطه ها انجام می گرفت و یا ازدواج بدون هیچ دخالتی و تنها بر مبنای ملاحظات اجتماعی صورت می گرفت و عشق می بایست پس از ازدواج بین طرفین به وجود می آمد. از چند نسل گذشته به این طرف، در دنیای غرب تصور کلی عشق رومانتیک عمومیت یافت. در ایالات متحده هر ای هرچند هنوز سنت های گذشته به کلی از میان نرفته، مشاهده می شود که مردم به طور روز در جستجوی عشق رومانتیک هستند و مایلند که شخصاً عشق خود را انتخاب کنند و آن را به طرف ازدواج سوق دهند. این تصور کلی و جدید از آزادی در عشق به معشوق و کنش او در مقابل عشق اهمیت بسیار زیادی داده است. یک مورد دیگر که با این عامل همبستگی نزدیکی پیدا می کند، سیمای دیگری از ویژگی فرهنگ معاصر است. اساس فرهنگ ما بر اشتهای سیری ناپذیر مبادلاتی پایگذاری شده که برای هر دو طرف سودمند باشند. خوشنودی انسان امروز لذت بردن از تماشای ویترین مغازهها و تهیه هرچه بیشتر اجناس آنها به نقد و اقساط است. زن و مرد مردم را نیز با همین دید نگاه می کنند. از نظر مرد یک زن جالب و از نظر زن یک مرد جالب قیمتی است که هر دو طالب آنند. جالب معمولا به مجموعه ای از صفات مردم پسند اطلاق می شود. که به منظور خرید آن در بازار شخصیت جستجو می شود آنچه شخص را از نظر ظاهری و اقلانی جالب جلوگر می‌سازد، بستگی به این دارد که چه صفاتی مدروز باشد در دهه 1920 یک دختر سیگاری، مشروب سکسی و پرخاشگر جالب محسوب می شد حالان که بیشتر حجب و حیا و علاقه به زندگی طرفدار دارد در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن حاضر لازم بود که مرد برای جلوه کردن مهاجم و جاه طلب باشد در صورتی که امروز مردان باید اجتماعی و بردبار باشند تا بتوانند کالای جالبی جلوه کنند به هر تقدیر احساس عاشق شدن معمولا تنها با در نظر گرفتن این احساس باطنی پدید می آید که با چه کالایی روبرو هستیم و این کالای انسانی نسبت به دیگران تا چه میزان ارزش معاوزه دارد؟ من اهل معامله هستم. کالا باید از نظر ارزش های اجتماعی مطلوب باشد و نیز باید با توجه به دارایی و امکانات محسوس و غیر محسوس من قبولم داشته باشد. بنابراین وقتی دو نفر آشق و شیدای یکدیگر میشوند می شوند که در بازار بهترین کالا را با توجه به نقایص و ارزش آن یافته باشند. و قالباً درست مانند خرید یک ملک، امکان بروز و گسترش اشکالاتی که نقش بزرگی در معامله ایفا می کنند، وجود دارد. در فرهنگی که همه راههایش به بازار ختم میشود و توفیق مادی مقام والایی دارد، تعجب ندارد که انسانها نیز در روابط عاشقانه خود روش داد و ستد سوداگران بازار را به کار گیرند. سومین اشتباهی که سبب میشود گمان کنیم که عشق نیازی به آموختن ندارد، در این نکته پنهان است که احساس نخستین عاشق شدن و حالت دائمی عاشق بودن، و یا بهتر بگویم در عشق ماندن را به جای یک دیگر اشتباه میگیریم. اگر دو نفر که همباره با هم بیگانه بودند، چنانکه همه ما چنین هستیم، توانند این دیوار بیگانگی را از میان بردارند و احساس قرابت و یگانگی کنند، این لحظه یکی از مسر بخشترین و حیجان انگیزترین تجارب زندگیشان می شود. به ویژه، هنگامی تر و موجز آساتر جلوه می کند که این دو نفر گذشته پرقید و بند و بی داشته باشند. این موجزه دلدادگی آنی، چنانچه با جذابیت جنسی و یا محرومیت از کامجویی همراه باشد، غالبا به سادگی حاصل می شود. هرچند که این نوع عشق با توجه به ماهیت آن ماندگار نخواهد ماند. دو نفر با هم آشنا می دلبستگی موجز آسای نخستین روز به روز تحلیل می رود. بین آنها اختلافات می افتد و سرانجام تلخ کامی، نومیدی، و سرزنش های دو جانبه باقیماننده های اولیه را از بین میبرد. هرچند در آغاز از چونین سرانجامی با خبر نیستند. در حقیقت، آنها شدت اولیه این شیفتگی احمقانه را دلیلی بر علاقه خود می‌پندارند. در حالی که ممکن است تنها دلیل چوننشقی قید و بند تنهایی و بیشخی ایام گذشته آنها بوده باشد. چون این طرز تفکری که هیچ چیز آسان از عشق ورزیدن نیست، گرچه هر روز شواهد بسیاری خلاف آن را ثابت می کند، همچنان بین مردم رایج است. هیچ نوع کار و کوشش مهمی وجود ندارد که مانند عشق با این همه امیدها و آرزوهای بسیار شروع شود و همواره سرانجامش به شکست منجر گردد. اگر چون این وضعی در کارهای دیگر پیش می آمد، مردم مشتاقان دلایل شکست آن را جستجو می کردند و راه بهتر آن را میآوختند و یا به کلی از آن صرف نظر میکردند. چون رفتن از راه دوم در مورد عشق ممکن نیست به نظر میرسد برای قلبه بر شکست تنها یک راه باقی می ماند و آن مطالعه دقیق دلایل این شکست و تلاش برای یافتن معنی واقعی عشق است نخستین قدم این است. آگاه شویم که عشق یک هنر است. همانطور که زندگی کردن هم یک هنر است. اگر ما بخواهیم بیاموزیم که چگونه میتوان عشق ورزید باید همان راهی را انتخاب کنیم که برای آموختن هر هنر دیگر چون موسیقی، نقاشی، نجاری و یا هنر پزشکی یا مهندسی لازم است بیاموزیم. مراحل لازم برای آموختن هر هنر چیست؟ مراحل آموختن هر هنر را به راحتی می توان به دو مرحله تقسیم کرد. مرحله نخست تسلط به جنبه تئوری و مرحله دوم تسلط به جنبه عملی. اگر من بخواهم هنر تبابت را بیاموزم، نخست لازم است که حقایقی را درباره بدن انسان و بیماریهای گوناگون آن بدانم. وقتی من تمام این دانش تئوری را آموختم هنوز به هیچ وجه صلاحیت دخالت در هنر تبابت را ندارم من تنها پس از تمرین بسیار در این هنر ماهر میشوم هنگامی که نتیجه معلومات دانش تئوری و نتیجه تمرین و کار به هم بیامیزند و یکی شوند زیرا بینش من اساس تسلط بر هر هنری محسوب می شود اما خارج از حیطه آموزش تئوری و عملی عامل سومی نیز برای کسب مهارت در هنر ضرورت دارد. برای تسلط در هنر باید هدف مسئله قایی باشد. یعنی برای آموزش گیرنده نباید در دنیا چیزی مهمتر از هنر جلوه کند. این حقیقت درباره موسیقی، پزشکی، نجاری و عشق مسلم است. ممکن است بتوان جواب این سؤال را پیدا کرد که چرا مردم در فرهنگ ما علا رغم شکست های آشکارشان در عشق به ندرت برای آموختن این هنر کوشش می کنند؟ و با وجود اشتیاق وافر و بیپایانی که به عشق دارند تقریبا همه چیزهای دیگر مانند موفقیت، پول، مقام و قدرت برایشان از عشق مهمتر است تقریبا تمام نیروی ما صرف این می شود که راه رسیدن به این هدف ها را بیاموزیم و تقریبا هرگز هنر عشق ورزیدن را نمی آموزیم آیا می توان قبول کرد که تنها چیزهایی ارزش آموختن دارند که ما را به پول و مقام میرسانند و عشق که فقط برای روح مفید است و به مفهوم امروزی سودی آیدمان نمی کند فقط یک امر تفنن نیست و ضرورتی ندارد که نیروی چندانی برای آن صرف کنیم به هر صورت که باشد ما هنر عشق ورزیدن را با توجه به آنچه پیش از این گفته شد از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می دهیم نخست درباره جنبه تئوری عشق بحث می کنیم. بحثی که قسمت اعظم این کتاب را دربر می گیرد سپس به جنبه عملی عشق می پردازیم گرچه درباره جنبه عملی عشق مانند جنبه عملی رشته های دیگر کمتر میتوان گفتگو کرد